Thank you. فرزندان قزلالا در زمانهای قدیم پادشاهی تو ایرلند زندگی میکرد که بچه ای نداشت بزرگترین آرزوی اون و همسرش این بود که یه بچه داشته باشن پادشاه یه روز به همسرش گفت من پیش پیرمرد کور دانا میرم تا یه پندی به من بده ملکه گفت حتما برو و پندش پندشو بشنو شاید به این ترتیب ما بچه دار بشیم پادشاه پیش پیرمرد کور دانا رفت و ازش پرسید فکر میکنی چیزی تو دنیا وجود داشته باشه که به ما کمک کنه بچه دار بشیم؟ پیر مرد دانا پاسخ داد. حتما وجود داره. پیش قایقران برو و از او بخواه یک قزلالا برات بگیره. بعد از آشپزت بخواه تا اونو برات سرخ کنه. بیان که به بسوزه یا خشک بشه. بعد اونو به همسرت بده تا بخوره و مراقب باش کس دیگه از اون نخوره. بعد صاحب یه فرزند میشی. پادشاه به خونش رفت و هرچی که پیرمرد گفته بود انجام داد یه ماهی قزلالا گرفت و به آشپز داد و آشپز اونو سرخ کرد قسمت کوچیکی از پوست ماهی سوخت و آشپز انگشتش رو روی اون مالید و به دهن برد و لیسید سه فصل بعد از اون شب آشپز یه پسر به دنیا آورد و زن پادشاه هم همون روز صاحبه پسر شد این دو پسر در قصر با هم بزرگ شدند تا اینکه به سن مدرسه رسیدن اونا را به مدرسه فرستادن و در اونجا هیچ کی هر چقدر هم چشمانش قوی بود نمیتونست پسر آشپز را از پسر پادشاه تشخیص بده از بس که شبیه هم بودن ملکه دوست داشت که پسر آشپز با پسر خودش روی یه میز غذا بخوره اما هیچ وقت قادر نبود اون دو را از هم تشخیص بده بنابراین گفت که میخواد علامتی روی پسر آشپز بذاره تا اونا را از هم بشناسه و یه روز که اونا از مدرسه برمیگشتن پسر آشپزو گرفت و تیکه کوچیکی از لاله گوشش رو برید. روز بعد تو راه مدرسه پسر پادشاه به پسر آشپز گفت: چه کسی نوک گوشت رو بریده. پسر پاسخ داد: مادرت ملکه این کارو کرده تا وقتی پشت میز میشینیم بتونه ما را از هم تشخیص بده. پسر ملکه گفت: اگه دلیلش اینه پس تو هم باید تکی از گوش منو ببری درست مثل تکی که از گوش خودت بریده شده تا او مثل گذشته از تشخیص ما ناتوان باشه پسر آشپز تکی از گوش پسر ملکه رو برید و ملکه باس هم از تشخیص دادن اونها عاجز شد پسران مدرسه رفتن رو ادامه دادن تا اینکه به دو جوان زیبا و برازنده تبدیل شدن یه روز پسر آشپز به پسر پادشاه گفت دیگه دلیلی نداره من اینجا بمونم، باید برم دنبال سرنوشتم. پسر پادشاه گفت، اگه این کار بکنی منم باهات میام. هر جا که یکی از ما میره، اون دیگری هم باید همونجا باشه. پسر آشپز گفت، همینجا که هستی بمون. تو اینجا زندگی خوبی داری، من برات پیغام میفرستم تا بدونی که زندم یا مرده، تا وقتی زندم مقداری اصل روی چاه کوچیک خواهی دید و اگه بمیرم کمی خون روی چاه پدیدار میشه پسر آشپز رفت و سگ شکاری، سگ خانگی و شاهینش رو نیز با خودش برد اون رفت و رفت و رفت تا به خونه نجیب زاده رسید در زد و یه دختر خدمتکار در و براش باز کرد پسر ازش پرسید که آیا ارباب خونه است؟ و دختر جواب داد بله نجیبزاده بیرون اومد و از پسر پرسید که از کجا اومده و چی میخواد؟ پسر آشپز گفت شنیدم که شما دنبال یه خدمتکار پسر هستین فکر کردم شاید من براتون مناسب باشم نجیبزاده گفت بسیار خوب پیش دختر خدمتکار برو اون شامتو تو بهت میده فردا صبح میتونی گله رو به چرا ببری تا اینجا همه چی بر وفق مراد بود پسر آشپز صبح روز بعد خیلی زود از خواب بیدار شد. سبونش رو خورد و گله رو به چرا برد. اما دید که محل چرای گله مثل جاده صافه و حتی یه دونه علف هم نداره. در کنار چراگاه اونور دیوار یه باغ بود که متعلق به یه غول بود و بهترین علف ها اونجا بود. پسر با خودش گفت گله رو اونجا میبرم تا چرا کنه چون اینجا که چیزی وجود نداره. پس یه شکافی تو دیوار ایجاد کرد و گله رو برای چرا به زمین غول برد. اما چیزی نکزش که قول بهش نزدیک شد و داد زد اینجا چه کار میکنی؟ از کجا اومدی؟ پسر گفت من پسر پادشاه ایرلند هستم و برای چراندن گله به اینجا اومدم. قول گفت تو برای یه لغمه بزرگ و برای دو لغمه کچیکی اما اگر روت نمک بپاشم تو یه لغمه میخورمت. بعد پرسید که آیا زورآزمایی از طریق کشتی رو ترجیح میدی یا با جنگ و شمشیر؟ پسر آشپز جواب داد. کشتی رو ترجیح میدم چون در اون صورت استخونهای خوب و اصیل من بر فراز اعضای پست بدن تو قرار میگیره اون وقت با هم گلاویز شدن و قول با اولین فن پسر آشپز رو به زانو در آورد درست در همین لحظه دوشیزه ای زیبا سرش را از پنجره قصر بیرون آورد و گفت ای پسر پادشاه ایرلند اگه به دست قول کشته بشی، دوستان و بستگان تو هیچ یک اینجا نیستن که جسدت رو دفن کنن و بر گورت اشک بریزن، پس بهتره در این مبارزه پیروز بشی. پسر به دوشیزه نگاهی کرد و یهو تازه ای پیدا کرد. اونا دوباره شروع کردن و در مبارزه دوم پسر آشپز تونست قول را به زانو در بیاره. قول گفت: ای پسر پادشاه ایرلند تو بهترین جنگجویی هستی که تا کنون با من کشتی گرفته جونمونو نگیر و من در عوض اسب قهوه‌ای چابکم رو به تو میدم که حتی از باد مارس هم سریعتر میره علاوه بر اون شمشیر نور رو هم بهت میدم شمشیری که اگه با اولین ضربه نکشه با دومین ضربه تا مغز استخون رو میشکافه پسر آشپز پس پرسید شمشیر کجاست اول گفت اونجا روی سخره اونو برای خودت بردار. پسر آشپز گفت: میخوام تیزی لبه اونو آزمایش کنم. گول گفت: اون رو روی کنده‌ی کهنسال و زشتی که پشت سرت افتاده امتحان کن. پسر آشپز گفت: من کنده‌ی کهنسالی زشتر از کنده‌ی کهنسال خودت نمیبینم و ضربه‌ای برگردن گول زد و سرش تنش جدا کرد. سر گول تلاش کرد تا دوباره روی بدنش برگرده، اما پسر آشپز ضربه دیگه‌ای بر اون زد. و سر از وسط نصف شد سر گفت کار درستی کردی چون اگه دوباره به روی همون بدن برمیگشتم نیمی از فینیان ایرلند هم نمیتونستن منو از اون جدا کنن من اکنون به پایان راه رسیدم پسر آشپز گفت حق تامین بود اون وقت دوشیزه زیبا بار دیگه سرش رو از پنجره بیرون آورد و از اون خواست که داخل بشه تا شامشون رو با هم روی یه میز بخورن دختر از پسر آشپز پرسید که آیا با اون ازدواج میکنه و پسر جواب مثبت داد و بعد با هم ازدواج کردن. همه چیز راه بود تا اینکه همون شب ساعت 12 یک خرگوش صحرایی وارد اتاق شد که پسر آشپز تو اونجا خوابیده بود و با پنجه کسیف خودش زربه ای به دهنش زد و از اونجا رفت. پسر آشپز گفت من چنین اهانتی رو نمیتونم تحمل کنم و تا اون خرگوش رو پیدا نکنم آروم نمیشم. اون وقت رفت و لباس پوشید و به همراه سگ شکاری، سگ خانگی، شاهین و اسب قهوه‌ای چابکش از قصر خارج شد. اونا شروع به تعقیب خرگوش کردند. هر وقت خرگوش روی تپه بود، اونا تو دره بودند و هر وقت خرگوش توی دره بود، اونا روی تپه بودند. پسر آشپز تمام مدت پشت سر خرگوش بود تا اینکه شب شد. در این وقت نوری در, در... در این هنگام نوری تو دل جنگل دید و به طرف اون رفت. اونقدر رفت و رفت تا اینکه به خونه کوچکی که نور از اونجا بیرون میزد رسید. وارد اون شد. آتیش خوبی تو آتشدان روشن بود اما اثری از ساکنین خونه نبود. پسر کنار آتیش نشست تا استراحت کنه اما طولی نکشید که در باز شد و آنکه پا به درون گذاشت کسی نبود جز پیرزن جادوگر با موهای خاکستری. پیرزن کنار در روی زمین نشست پسر چشم از اون بر نمی داشت و متعجب بود که چرا پیرزن کنار آتیش نمیاد ازش پرسید چرا به کنار آتیش نمیای پیرزن گفت از شاهین و سگ می ترسم باید اونا رو ببندی پسر گفت لزومی نداره از اونا بترسی چون اصلا آزاری به تو نمیرسونن پیرزن گفت حتما آزار میرسونن و تو باید اونا رو ببندی پسر آشپز گفت من چیزی ندارم که اونا رو ببندم پیرزن گفت من بهت میدم و سرشت مو از سرش کند و به اون داد و گفت دوتا رو دور گردن سگها و سومی رو دور سر شاهین ببند پسر سگ شکاری، سگ خانگی و شاهین رو بست و پیرزن کنار آتیش اومد و گفت چه حقی داشتی پسرم رو بکشی؟ و با حالتی خسمانه مقابلش ایستاد پسر گفت تو مادر قولی هستی که دیروز کشتم؟ و آماده شد تو از خودش در برابر پیرزن که نخونای بلندش رو به اطراف اون دراز کرده بود دفاع کنه. اونا با هم گلاویز شدن تا اینکه بعد از مدتی پیرزن در آستانه پیروزی قرار گرفت. پسر آشپز سگ شکاریش را صدا زد. کمک کمک سگ شکاری. پیرزن گفت محکم محکم مو. موی پیرزن دور گردن سگ شکاری محکم شد و نفس اونو بند آورد. پسر آشپز گفت کمک کمک سگ خونگی. پیرزن گفت محکم محکم مو. سگ خونگی ناله ای کرد و مو دور گردنش محکم شد و نفسش رو بند آورد. در این لحظه پیرزن پسر آشپز رو به زانو در آورده بود. پسر گفت کمک کمک شاهین کجایی؟ پیرزن گفت محکم محکم مو موسفت شد و نفس شاهین رو بند آورد. پیرزن با یه حرکت دیگه پسر آشپز رو کاملا به زمین زد. پسر گفت آه پیرزن تو پیروز شدی و من به آخر خط رسیدم. پیرزن عصای جادوییش رو بلند کرد و اونو به ترتیب به پسر، سگ شکاری، سگ خانگی، شاهین و اسب قهوه ای زد و اونها رو به پنج سنگ خاکستری ایستاده تبدیل کرد. اما پسر پادشاه که در خونه مونده بود هر روز به سر چاه می رفت تا ببینه برادرش است یا مرده. روزی که پیرزن پسر شاه رو جادو کرد، پسر ملکه طبق معمول به سر چاه رفت و دید که روی آب خونه و زیر اون اصل با خودش گفت برادرم یا مرده و یا در خطره از این لحظه آرام و قرار نخواهم داشت مگر اینکه زنده یا مرده اونو پیدا کنم پس سگ شکاری سگ خونگی و شاهینش رو برداشت و حرکت کرد هر جا که میرفت دنبال خبری از برادرش بود تا اینکه به خونه همون نجیبزاده رسید که پسر آشپز رو برای نگهداری از گلش استخدام کرده بود نجیبزاده زاده اونو هم برای همون کار استفاده کرد پسر پادشاه شامشو خورد و به رخت خواب رفت. صبح زود از خواب بلند شد، و خورد و گله نجیب زاده رو به چرا برد. اما یه دونه علف هم روی زمین نبود. چراگاه مثل کف دست صاف بود. شاهزاده گفت: "اینجا برای یه جوجه قاز هم چیزی پیدا نمیشه. چه برسه به گاو؟ اونا رو به اون باغ سرسبز میبرم تا خوب چرا کنن." و شکافی در دیوار مجاور ایجاد کرد و گاوها رو به زمین غول برد. قولی نکشید که قولی بزرگو زشت دوان دوان به طرفش اومد و پرسید چرا به اینجا اومدی و کی هستی پسر پادشاه گفت به تو ربطی نداره برادرم رو زنده یا مرده به من برگردون من پسر پادشاه ایرلندم اول سعی کرد اونو بگیره و بکشه اما شاهزاده از چنگش فرار کرد اول گفت تو برای یه لقمه بزرگ و برای دو لقمه کوچیکی اما اگه یکم نمک رود بپاشم یه لقمت میکنم. دوست داری چطوری به جنگی؟ کشتی یا جنگ با شمشیر شاهزاده گفت کشتی رو ترجیح میدم چون در اون صورت اسخونهای پاک و اصیل من بر فراز اسخونهای پلید و ناپاک تو قرار میگیره اونا با هم گلاویز شدن و شاهزاده با اولین فنقول رو, رو روی یکی از زانوهاش نشوند در همین موقع دو زیبا سرش را از پنجره بیرون آورد و گفت شاهزاده ای ایرلندی در اینجا زنی از بستگان تو نیست تا برات عشق بریزه یا جسدت رو دفن کنه پس در جنگ پیروز شو شاهزاده با شنیدن این حرف نیرویی مضاعف گرفت و در حرکت بعدی قول رو به زمین زد. قول گفت: صبر کن، جونم رو نگیر و من در عوض اسب تیز تیزتک و شمشیر نورم رو به تو میدم. تو بهترین جنگجویی هستی که تا حالا دیدم. شاهزاده پرسید: شمشیر نور کجاست؟ اونجا روی سنگ. شاهزاده پرسید: اون رو روی چی امتحان کنم؟ قول گفت: روی اون کنده کهنسالی که, که اونجاست. شاهزاده گفت: قندهی کنسولتا رو زشتر از خودت نمی بینم و با یه ضربه سر از تن قول جدا و اونو از وسط نصف کرد. دوشیزه زیبا که سرش را از پنجره قصر بیرون آورده بود گفت آفرین زنده باد و شاهزاده رو به داخل دعوت کرد تا شام رو با هم صرف کنند. شاهزاده داخل شد و شام رو با دختر سر یک میز خورد و بد به رخت خواب رفت. اما ساعت دوازده شب زمانی که او در خواب بود یک خرگوش صحرایی وارد اتاق شد و با پنجره کثیفش به دهن اون زد و از اونجا رفت. شاهزاده عصبانی از خواب بیدار شد و تصمیم گرفت از خرگوش انتقام بگیره. بنابراین سگ شکاری، سگ خونگی شاهین و اسب قهوه‌ای رو برداشت و به دنبالش رفت. وقتی خرگوش روی تپه بود، اونا تو دره بودند. وقتی اون تو دره بود، اونا رو تپه بودند. تقریباً تا شبانگاه ادامه پیدا کرد. در این هنگام شاهزاده به دنبال نوری که تو جنگل دید، به کلبه کوچکی رسید. در رو باز کرد و وارد شد. کسی که کنار آتیش نشسته و سرش رو به دستش تکیه داده بود، پیرزن جادوگر بود. پسر پادشاه گفت: بلند شو شام من و سگام رو آماده کن. پیرزن گفت: از جام تکون نمیخورم. مگر اینکه سگها و همچنین شاهین رو ببندی. شاهزاده گفت: چیزی ندارم تا اونا رو ببندم و در ذهن اونا کاری با تو ندارن. پیرزن گفت: ولی در واقع دارن. این هم چیزی برای بستن آنها و سرشت مو از سرش کند. پسر پادشاه رشته های مو رو از پیرزن گرفت و اوننا رو دور از چشم اون در دراتیش انداخت و گفت حالا بلند شو و شما رو آماده کن. پیرزن گفت راستش این کارو نمی کنم. شاهزاده گفت مجبورت می کنم تا اونو برام آماده کنی و شمشیر نور رو بیرون کشید. هنوز حرفش رو کاملا تموم نکرده بود که پیرزن گلوش و گرفت و با هم درگیر شدن. پیرزن در آستانه پیروزی بود و شاهزاده رو, رو روی یک زانوش نشونده بود که شاهزاده فریاد زد، کمک کمک سگ شکاری پیرزن فریاد زد محکم محکم مو مو گفت نمیتونم چون تو آتیش افتادم سگ شکاری از جا پرید و گازی از صورت پیرزن گرفت پسر پادشاه صدا زد کمک کمک سگ خونگی پیرزن فریاد زد محکم محکم مو مو گفت نمیتونم چون تو آتیشم سگ روی پیرزن پرید و نیمی از دستش رو کند شاهزاده صدا زد کمک کمک شاهین پیرزن فریاد زد محکم محکم مو مو گفت نمیتونم چون تو آتیش افتادم شاهین به پرواز در اومد و یکی از چشمهای پیرزن رو در آورد پسر پادشاه پیرزن رو به پشت روی زمین انداخت پیرزن داد زد صبر کن جونم و نگیر و من در عوض برادرت رو به همراه سگ شکاری سگ خانگی شاهین و اسب ایش به تو پس میدم شاهزاده با فریاد پرسید اونا کجان پیرزن جواب داد اون عصای جادویی رو بردار و زربه ای به پنج سنگ خاکستری که بیرون خونه هستن بزن. اونا سر پا خواهند ایستاد، درست همونطور که قبلا بودن. شاهزاده گفت: "درستش اینه که قبل از اون کار جون تو رو بگیرم." و بعد با عصای جادویی ای به پیرزن زد و اونو به یه سنگ خاکستری تبدیل کرد. اون وقت افسار رو به پنج سنگ ایستاده زد و برادرش به همراه سگ شکاری، سگ خونگی، شاهین و اسب قهوه‌ای در برابرش ایستادند. پسر آشپز و پسر پادشاه با هم دست دادند و ماجراهایی را که پس از جدایی از هم پشت سر گذاشته بودند برای هم تعریف کردند. اونا به اتفاق پیش دوشیزه زیبای قصر قول رفتند. دوشیزه دستش رو به دست پسر آشپز داد و تمام ثروت قول رو نیز در اختیارش گذاشت. اون دو تا سالهای سال در قصر قول زندگی کردند. پسر پادشاه ایرلند هم به خونه برگشت و با دختر پادشاه فرانسه ازدواج کرد. پایان کانال تلگرامی هزار افسان داستان های افسان ای صی نشانی کانال تلگرامی تی نقط می/ مهران دوستی تی نقط ME/MEH،